زوزه به سوی جنگل زمستانه و بی اینکه مقصدی داشته باشه دخترک فرار میکنه از هر چیزی که میشناسه فشار هر لحظه بیشتر میشه فشار بیشتر میشه و تمومی نداره بدنت رو میخوان روحت رو لبخند های دروغینت رو میخوان زندگی ستاری راک همینه گرگ ها دورت رو گرفتن مثل یه رؤیای تبالود گرگ ها دورت رو گرفتن تا جیغ بکشی زوزه بکش به تاریکی شب زوزه بکش تا رسیدن نور زوزه بکش نوبت توی که بجنگی زوزه بکش همه چیزو درست کن زوزه بکش زوزه بکش زوزه بکش زوزه بکش, زوزه بکش. زوزه بکش. نمیتونی تا عبد بجنگی باید کنار بیای اگه زندگیت فایده نداره باید دنبال دلیلش باشی یادته وقتی کوشیکتر از اون بودیم که از فردا بترسیم یا قصه دیروز رو بخوریم فقط خودمون بودیم و زمان فقط به حالا خلاصه میشد. زندگی می کردیم حرکتی نمی کردیم. مثل بازوهای توی آستین، چون وقت داشتیم وقت نفس کشیدن، دوران بد اینجاست، دوران بعد رسیده، اما زندگی چطور میتونه تموم بشه، وقتی هنوز شروع نشده، دریاچه برق میزنه و آب سرده، انگار سطحش از تلاست، آهنگ رو قطع کن تا ملودی رو بهتر بشنوی، لبخندهای دروغین رو کنار بذار و رو به ماه زوزه بکش زوزه بکش رو به تاریکی شب زوزه بکش تا سر رسیدن نور زوزه بکش نوبت توی که بجنگی زوزه بکش همه چیزو درست کن زوزه بکش زوزه بکش زوزه بکش عشق رنج نورا با صدایی محکم و پرقدرت به خانم علم گفت از این فرایند خوشم نمیاد میخوام متوقف بشه خانم علم گفت لطفاً آرومتر حرف بزن مهره اسب سفید توی دستش بود و سعی میکرد روی حرکتش تمرکز کند اینجا کتاب است فقط ما دو نفر اینجاییم مهم نیست در هر صورت اینجا کتابخونه است. هست. وقتی میری کلیسا، فقط به خاطر اینکه توی کلیسا هستی ساکت میستی. نه به خاطر آدم های اطرافت. بحث کتاب همینه. نورا با صدایی آرام تر گفت خیلی خوب، از این وز خوشم نمیاد. میخوام متوقف بشه. میخوام عضویتم توی کتاب رو لغو کنم. میخوام کارت کتاب خونم رو پس بدم. کارت کتابخونه خود تویی. نورا برگشت سر حرف اولش میخوام خوام بشه نه نمیخوای معلومی معلومه که می پس چرا هنوز اینجایی چون انتخاب دیگه این ندارم حرفم رو باور کن نورا اگه واقعا نمیخواستی اینجا باشی نبودی همون اولی کار که بهت گفتم از این بحث خوشم نمیاد چرا چون خیلی دردناکه چرا دردناکه؟ چون واقعیه. توی یه زندگی برادرم مرده. چهره‌ی کتابدار دوباره جدی شد. توی یه زندگی، یکی از زندگی‌های اون تو مردی. به نظرت این برای اونم دردناکه؟ شک دارم. این روزا دیگه اصلا اسمم رو هم نمیاره. زندگی خودش داره و منو به خاطر ناموفق بودنش سرزنش میکنه پس تمام این ماجرا درباره برادرت؟ نه درباره یه همه چیز. اینگار نمیتونم جوری زندگی کنم که به کسی آسیب نزنم خب واقعا نمیتونی خب اصلا چرا زندگی کنم؟ اگه بخوایم منطقی حساب کنیم مردن آدم هم بقیه رو آزار میده خب حالا زندگی بعدی که انتخاب میکنی کدومه؟ هیچ کدوم چی؟ کتاب دیگه نمی نمیخوام زندگی دیگه نمی نمیخوام رنگ از رخ خانم علم پرید. درست مثل سالها پیش وقتی که خبر مرگ پدر نورا را با تلفن شنید نورا لرزشی را زیر پایش حس کرد زلزله کوچک او و خانم علم به طبقات چنگ زدند تا زمین نخورند و همزمان کتاب‌ها روی زمین ریختند لاب ها سوسو زدند و بعد کاملا خاموش شدند میز و صفحه شطرنج چپه شدند خانم علم گفت، وای، نه، دوباره، چی شده؟ خودت میدونی چی شده، اینجا فقط به خاطر تو وجود داره، تو منبع قدرتی وقتی ارتباط منبع قدرت با اینجا قطع شه، کتابخونه به خطر میفته، مشکل توی، نورا. در بدترین زمان ممکن داری ناامید میشی نباید کم بیاری نورا خیلی چیزها هست که ندیدی خیلی موقعیتها میتونی داشته باشی زندگی های خیلی زیادی داری یادت وقتی خرس قطبی رو دیدی چه حسی داشتی یادت چقدر میخواستی زنده بمونی خرس قطبی خرس قطبی متوجه نیستی که حتی تجربه های بد هم فایده و هدفی دارن نورا حالا حقیقت را میدی. حسرت هایی که یک عمر در زندگیش حس کرده بود، بیفایده بودند. چرا؟ زلزله یک متوقف شد. اما هنوز هم کتابها ها همه روی زمین ریخته بودند. لامپ ها روشن شده بودند، اما هنوز سوسو می زدند. لورا گفت، ببخشید. به طرف کتاب ها رفت تا برشان دارد و در قفس ها بچیند. خانم علم با عصبانیت گفت، نه، بهشون دست نزن، بذارشون زمین. ببخشید، هی hey, نگو ببخشید، بیا واسه این یکی کمکم کن، امتره به خانم علم کمک کرد میز را سر جایش برگرداند بعد مهره های شدرنج را جمع کردند و برای شروع بازی جدید روی صفحه چیدند کتابایی که روی زمین ریخته چی؟ همینطوری ولشون میکنیم؟ واسه چه اهمیتی داره؟ تو که میخواستی همهشون از بین برن؟ با اینکه که خانم علم فقط سازوکاری برای ساده سازی پیچیدگی جهان کوانتومی بود حالا که میان قفصهای نیم خالی کتاب و صفحه چیده شده شطرنج شد نشسته بود غمگین و متفکر و بینهایت انسانی به نظر می رسید سرانجام پس از مدتی خانم علم گفت نمی خواستم اینقدر خشن با حرف بزنم اشکالی نداره خانم علم گفت یادم اون هوایل، وقتی توی کتاب مدرسه هم با هم دیگه شطرنج بازی میکردیم، همیشه بلافاصله فاصله بهترین محرهاتو از دست میدادی. همون اول وزیر یا رخاتو می آوردی بیرون و از دستشون میدادی. بعد هم یه جوری رفتار میکردی که انگار بازی رو باختی، چون فقط سرباز و یکی دوتا اسب برات مونده بود. چرا الان حرف اون موقع رو میزنین؟ خانم علم نخی را آویزان از پولیورش دید و آن را توی آستینش فرو کرد. اما بعد نظرش عوض شد و نخ را دوباره آویزان رها کرد. خانم علم گفت، اگه میخوای بالاخره زمانی توی شطرنج موفق بشی، باید یه چیزی رو درک کنی. انگار نورا هیچ کار مهمتری نداشت. چیزی که باید درکش کنی اینه. بازی ادامه داره تا وقتی که واقعا تموم بشه. حتی اگه یه مهره سرباز روی صفحه باشه، هنوز بازی تموم نشده. اگه یکی از بازیکن‌ها فقط یه سرباز و شاه داشته باشه و بازیکن دوم تمام مهرهاش داشته باشه، باز هم بازی هنوز ادامه داره. حتی اگه تو اون سرباز باشی که هممون همینیم، باید این رو به خاطر بسپوری که مهره سرباز جادویی ترین مهره شدرنجه. ممکنه کوچیک و معمولی به نظر برسه. اما اینطور نیست. چون یه سرباز هیچ وقت فقط سرباز نیست. مهره یه که میتونه وزیر بشه. تنها کاری که باید بکنی اینه که براهت ادامه بدی و بری جلو خونه به خونه. وقتی هم به سمت دیگه برسی هر قدرتی که بخوای به دست میاری. نورا به کتابهای اطراف اطرافش خیره شد. پس میخوایین بگین توی این بازی فقط مهره سرباز دارم؟ حرفم اینه. اونی که معمولی ترین چیز دنیا به نظر می رسه، ممکنه در نهایت همون چیزی باشه که تو رو به موفقیت میرسونه باید به پیش ادامه بدی. مثل اون روز توی رودخونه. یادته؟ البته که یادش بود. چند سالش بود؟ احتمالاً هفته ساله بود. چون دیگر در مسابقات شنا شرکت نمی کرد. دوران آزار ای بود. پدرش در بیشتر مواقع با او بدرفتاری می کرد و مادرش درگیر یکی از آن دوره های افسردگی خاموشش بود. برادرش آن آخر هفته با راوی از دانشکده ی هنر به خانه برگشته بود. آمده بود تا بدفورد داشتنی را به دوستش نشان بدهد. جو یک مهمانی بدون برنامه ریزی کنار رودخانه برگزار کرد که پر بود از موسیقی و نوشیدنی و مقدار زیادی ماریجوانا و دخترانی که از بیتوجهی جو بهشان ناراحت بودند نورا هم دعوت شد زیادی نوشید و به طریقی صحبتش با راوی به بحث شنا کشید راوی از او پرسید yani, یعنی می میتونی عرض رودخونه رو شنا کنی؟ معلومه کسی دیگر گفت ولی نمیتونی. اینطور شد که نورا یک لحظه تسلیم حماقت شد و تصمیم گرفت زایه‌شان کند. برادر بزرگتر نشو و مستش هم وقتی متوجه این حقیقت شد که دیگر دیر شده بود و نورا داخل آب بود. همزمان با آمدن این خاطره به ذهن نورا، کف سنگی دالان انتهای راهروی کتابخانه جایش را به آب جاری داد. با اینکه قفسهای اطراف نورا سر جایشان ماندند، چمن از کاشی های زیر پایش بیرون زد و آسمان جای سقف بالای سرش را گرفت. اما برخلاف وقتی که در نمونه ای از زمان حال فرو می رفت، این بار خانم علم و کتاب ها باقی ماندند. یک پایه نورا در خاطرش بود و یک پایش در کتابخانه. نورا به کسی در دالان رودخانه خیره شده بود. به خود جوانترش درون آب و نور خورشید اواخر تابستان که روبه تاریکی می رف. هم مسافتی، آب رودخانه، سرد و جریانش قدرتمند بود. همانطور که خودش را تماشا می کرد دردشان ها و بازوهایش را به یاد آورد و سنگینی و خشکیشان را، انگار که زره فلزی به تن داشت، یاد آورد که آن موقع درک نمی کرد چرا با ورود تلاش زیادی که می شبه درختان افرا با سرکشی تمام در سمت دیگر رودخانه بزرگتر نمی و گویی ساحل رودخانه فاصلش را با او حفظ می به یاد آورد که کمی از آب کسیف رودخانه نوشیده و بعد برگشته و به آن یکی ساحل رودخانه نگاه کرده است. همان ساحلی که حالا تقریبا در آن ایستاده بود و تماشایش میکرد و در خاطرش نمونه جوانتر برادرش و دوستهایش بی توجه به او و قفسه های کتاب اطرافش ایستاده بودند به یاد آورد که چطور در آن حالت منگی یاد کلمهی هم افتاده بود. کلمه که باید در امنیت محض کلاس درس به زبان میآد هم مصافت. کلمه خونسا و تا حدودی ریاضیاتی که آن موقع همچون ورد مراقبه جنوناسایی در ذهن نورا گیر افتاده بود و پشت سر هم تکرار میشد و در این حین نورا از آخرین ذرات انرژی بدنش استفاده میکرد تا دقیقا همان جایی که بود بماند هم مسافت، هم مسافت، هم مسافت نه به این ساحل نزدیکتر بود و نه به آن ساحل نورا در بیشتر عمرش همین حس را داشت. گیر افتاده در وسط، در تقلا و تلاش فقط برای اینکه زنده بماند، در حالی که نمیدانست باید از کدام راه برود و خودش را به کدام مسیر بسپارد تا پشیمان نشود. به ساحل سمت دیگر رودخانه نگاه کرد که البته حالا چندین قفسه کتاب هم داشت. اما هنوز هم میشد شبه درخت بزرگ افرا را دید که مثل پدر یا مادری نگران روی آب خم شده بود و باد میان برگهایش می‌وزید. خانم علم که ظاهراً افکار نورا را می‌شنید گفت: اما بالاخره خودت رو به یه مسیر سپردی و زنده موندی. رؤیای شخصی دیگر همانطور که دوستان جو او را از کناری ساحل عقب می و بعد دختری که نورا مدت ها پیش اسمش را فراموش کرده بود با اورژانس تماس گرفت نورا و خانم علم به تماشایشان ایستادند خانم علم گفت زندگی همیشه مثل یه نمایشه تو هم وقتی لازم بود نقشت رو ایفا کردی تا ساحل سمت دیگه رودخونه شنا کردی با چنگ و دندون خودت رو بیرون کشیدی اونقدر سرفه کردی که داشتی خفه می شدی و یخ میزدی اما در هر صورت با وجود تمام مشکلات از رودخونه گذشتی چیزی رو توی وجودت پیدا کردی آره باکتری پیدا کردم تا چند هفته مریض بودم کلی از آب کسیف رودخونه رفته بود توی میدم اما زنده موندی امید داشتی آره اما روز به روز بیشتر داشتم از دستش میدادم. نورا پایین را نگاه کرد و دید که چمنها به داخل کف سنگی کتابخانه کشیده می‌شوند. سپس به موقع رویش را برگرداند و برای آخرین بار یک نظر آب رودخانه را دید. لحظه بعد رودخانه ناپدید شد و درخت افرا و جو و دوستانش و نورای جوانتر همگی سوسوی زدند و غیب شدند. کتابخانه یک بار دیگر تبدیل به کتابخانه شده بود اما حالا همه کتاب ها دوباره در قفسه هایشان بودند و لامپ ها سوسو نمی خیلی حماقت کردم که رفتم توی آب فقط میخواستم بقیه رو تحت تاثیر قرار بدم همیشه فکر می کردم جو از من بهتره میخواستم ازم خوشش بیاد چرا فکر می کردی ازت بهتره چون پدر و مادر دین حس رو داشتن؟ نورا از روگویی خانم علم عصبانی شد اما شاید هم حق با او بود همیشه برای تحت تاثیر قرار دادنشون باید همون کاری رو میکردم که اونا می خواستن. البته جو هم مشکلات خودشو داشت من هم تا وقتی گراگش نمی نمیدونستم مشکلاتشو رو درک نمیکردم اما میگن رقابت خواهر و برادر در واقع از رفتار والدینشون نشت میگیره هم همیشه حس میکردم اونا رویا جو رو از رویه من مهمتر میدونن مثلا توی بحث موسیقی آره وقتی جو راوی گفتن میخوان ستاره موسیقی راک بشن مامان و بابا اول یه گیتار و بعد یه پیانو الکتریکی برای جو خریدن بعد چی شد گیتار موندگار شد تقریبا یه هفته بعد از خریدنش میتونست آهنگ دود روی آب رو بزنه اما از پیانو خوشش نمیومد و به این نتیجه رسید که دوست نداره فضای اتاقش رو باهاش شلوغ کنه خانم علم گفت و اینطوری پیانو گیر تو اومد این حرفش نپرسشی بلکه خبری بود میدانست البته که میدانست آره پیانو رو آوردن توی اتاق تو مثل یه دوست قدیمی ازش استقبال کردی و با اراده محکمی شروع کردی به یادگیریش پول تو جیبیت رو خرج کتاب آموزشی پیانو و آهنگ های برای تازهکارها. و آهنگ های گروه بیتلز برای پیانو کردی چون ازش خوشت میومد. البته برای اینکه میخواستی برادر بزرگترت رو تحت تاثیر قرار بدی هیچ وقت این رو براتون تعریف نکردم لبخندی شیطرت تامیز. نگران نباش کتابشو خوندم درسته البته آره فهمیدم خانم علم برای آنکه صمیمیت و تأثیر حرفش را بیشتر کند، نجواگون گفت شاید لازم باشه اینقدر نگران تایید دیگران نباشی نورا. لازم نیست کسی بهت اجازه بده تا خودت... آره، آره میفهمم. واقعا هم میفهمید. هر زندگی که از زمان آمدن به کتابخانه امتحان کرده بود، در واقع رویای شخصی دیگر بود. زندگی اولی که ازدواج کرده بود و میخانه داشت رویای دن بود. سفر به استرالیا رویای ایزی بود و حسرت نورا درباره نرفتن بیشتر به سمیمی ترین دوستش مربوط میشد تا خودش. رویای قهرمان شنا شدن متعلق به پدرش بود. بله، حقیقت داشت که در دوران کودکی به قطب شمال علاقه داشت و میخواست یخچال شناس شود. اما آن تصمیم هم تا حد زیادی از گفتگوهایش با خود خانم علم در کتابخانه مدرسه شکل گرفته بود هزار تو هم خوب آن هم از همان اول رویای برادرش بود شاید هیچ زندگی بینقصی برای او وجود نداشت اما مطمئنا جایی زندگی پیدا میشد که ارزش تجربه کردن داشته باشد نورا هم متوجه شد که اگر میخواهد آن زندگی را پیدا کند باید دامنه روس جو را وسیعتر کند خانم علم درست می گفت. بازی هنوز تمام نشده بود. هیچ بازی کنی نباید تا وقتی ای روی صفحه داشت تسلیم می شد. کمرش را راست کرد و صافتر استاد. باید از بالاترین و پایین ترین قفصه ها زندگی های بیشتری انتخاب کنی. تا الان سعی داشتی واضح ترین پشیمونی هات رو جبران کنی. کتاب های های بالایی و پایینی زندگی های متفاوتی هست. زندگی هایی که وجود دارن اما هیچ وقت اونها رو تصور نکردی یا نخواستی. حتی بهشون فکر هم نکردی. زندگی هایی هستند که میتونی تجربهشون کنی. اما هیچ وقت رویهاشون رو در سر نداشتی. یعنی زندگی هایی غمانگیزی هستن؟ بعضی هاشون آره، بعضی هاشونم نه. فقط بحث اینه که زندگی هایی هستن که خیلی به چشم نمیان همون هایی که برای رسیدن بهشون باید قوه تخیلت رو به کار بندازی. اما مطمئن میتونی پیداشون کنی. شما نمیتونین راه کنین؟ خانم علم لبخند زد. میتونم یه شعر برات بخونم. کتابدارها آشق شعرن. بعد شعری از رابرت فراست نقل کرد. دو جاده در جنگلی به هم رسیدند و من، من به آن یکی قدم گذاشتم که مسافر کمتری داشت و همین سبب تغییر شد اگه بیشتر از دوتا جاده توی جنگل به هم رسیده باشن چی؟ اگه تعداد جاده ها از درختها بیشتر باشه چی؟ اگه بینهایت انتخاب داشته باشی چی رابرت فراس در این شرایط چیکار میکنه؟ یاد سال اول دانشجوییش در رشته فلسفه افتاد که فلسفه ی عرستویی را مطالعه می کرد. از این حرف او که می گفت کمال هرگز تصادفی نیست، کمی افسرده شده بود. به نظر عرستو، کمال نتیجه انتخاب خردمندانه گذینه های مختلف بسیار بود. حالا هم نورا این فرصت را داشت که تمام آن گزینه های مختلف را امتحان کند. برایش مثل راهی میانبر، برای رسیدن به خرد، و شاید حتی شادی بود. حال نرا این موقعیت را نمایه ی عذاب بلکه موهبتی لایق قدردانی می دانست. خانم علم مهربانانه گفت به صفحه شترنجی که گذاشتیم سر جاش نگاه کن. ببین الان که هنوز بازی شروع نشده چقدر منظم و ایمن و آرام به نظر میاد. چیز زیباییه اما خسته کننده. مرده است. با این حال به محض اینکه یکی از مهره های روی صفحه را رو تکون بدی، همه چیز عوض میشه. اوزا پر آشوب میشه و به هم میریزه و با هر حرکت آشوب قدرت بیشتری میگیره. نورا رو روی خانم علم پشت میز شط رج نشست. به صفحه خیره شد و مهره سرباز را دو خانه جلو برد. خانم علم حرکت او را در سمت خودش تقلید کرد. نورا گفت، بازی کردنش آسونه، اما ماهر شدن توش خیلی سخته، هر حرکتی که میکنی دنیایی پر از احتمالات جدید رو خلق میکنه، نورا یکی از اسبهایش رو حرکت داد، مدتی به همین روند ادامه دادند، خانم علم در این مدت تفسیر خودش رو ارائه داد، اول هر بازی هیچ قدرت تغییری وجود نداره فقط به یه شکل میشه مهره ها رو روی صفحه چید. بعد از شش حرکت اول، نه میلیون مسیر احتمالی برای بازی وجود داره. و بعد از هشت حرکت، دویست و هشتاد و هشت میلیارد موقعیت مختلف. احتمالات همین طوری بیشتر و بیشتر میشن. روش های مختلف شطرنج بازی کردن از تعداد اتم های جهان هم بیشترند. واسه همین همه چیز میتونه به هم بریزه و شلخته بشه نه فقط هم یک راه درست که راههای بسیار زیادی وجود دارند توی شطرنج هم مثل زندگی واقعی احتمالات پایه همه چیزه هر امید هر رؤیا هر حسرت و هر لحظه زندگی در نهایت نورا بازی را برد حز میزد خانم علم خودش گذاشته که او برنده شود اما در هر صورت آخر بازی احساس بهتری داشت خانم علم گفت خیلی خوب فکر کنم دیگه وقت انتخاب کردن یک کتاب باشه نظر چیه؟ لورا به قفصهای کتاب نگاه کرد کاش عنوان مشخص داشتند کاش روی یکیشان نوشته بود زندگی بیعیب و نقصی که میخواهی اینجاست است قریزه اولیش این بود که سؤال خانم علم را نادیده بگیرد اما هر جا که کتابی باشد، همیشه کسی وسوسه می شود که آن را باز کند. نورا میدانست که حس خودش هم به زندگی های مختلف همین است. خانم علم دوباره حرف قبلش را تکرار کرد. هرگز اهمیت زیاد چیزهای کوچیک را نادیده نگیر. اینطور که معلوم شد، این حرفش خیلی به کار می آمد. نورا گفت، یه زندگی آروم می خوام. زندگی که توش با حیونا کار میکنم، زندگی که بری کار توی تئوری ریسمان شغل توی پناهگاه حیوانات رو قبول کردم همون پناهگاه حیواناتی که دوره مدرسه توش کار میکردم. آره لطفا اون زندگی رو بهم به بدین